کسان بزرگ، جاذبه و دافعشون هم میدان وسیع و گسترده ای دارد جاذبه و دافعه امام تماشایی است اونچه که مبنا و معیار جاذبه امام و دافعه امام بود، باز مکتب بود، اسلام بود در دعای چهل و چهارم، از دعاهای سعیفه سجادیه که دعای ورود در ماه رمضان است و ان نسالم من آدانا از تو میخواهیم که با همه دشمنان خودمون صلح کنیم هاشا منعود یا فیک و فانه العدو لا نوالیه و الذی لا نصافیه مگر اون دشمنی که من به خاطر تو با اون دشمنی کردم این دشمنیه که ما هرگز با دم از آشتی نخواهیم زد دل ما با او صاف نخواهد شد امام اینجوری بود دشمنی شخصی با کسی نداشت اگر کودورتهای شخصیام بود امام زیر و پا می گذاشت اما دشمنی به خاطر مکتب برای امام بسیار جدی بود